خب بسم الله الرحمن الرحیم باب فرض صلات و سنانیها و حیاتها باب فرض های نماز سنت های نماز و حیات نماز خب حیات هم همون سنت های نماز هستند ها منطحه اولای هستند که اگر ترک شدند نیازه به سجد سحو نداره براسون دیگه سجد سحو نمیشه چون سنت ها در مذهب شافعیه بر دو نوعند سنن ابواس و سنن هیات سنن ابواس اون سنن حسن که بر ترکشون نیاز به سجد سحو هست مانند تشهد اولی ولی سنن هیات نیازی به سجده صحب نیست مانند رفع الیدین چه برای تکبیر احرام چه برای رکوع و رفع الیدین این هم از سنن حیات هست نیازی به سجده صحب نیست اگه ترک شد براش سجده صحب نمیشه پس حیات هم همون سنن هست میگه و فروضها بعد المتقدم من شروطها ثمانیت عشر فرزن فرضه های نماز بعد از شرطه های متقدمش هیچده تا فرض می باشند خب شرط اونیه که نماز بدون اون صحیح نیست منطقه خارج از حقیقت نمازه مثل وزو فرض اونیه که نماز بدونش صحیح نیست تا داخل در نمازه مثل رکوع مثل سجده بله پس فرضه ها شدن هیچده تا الان اینارو رو ردي فيه ذكر مكونه. القيام يك قيام والنية دنيات والإحرام سي إحرام وقراءة الفاتحة شار خان دنا والركوع بنج ركوع والطمأنينة فيه شش أرامش در ركوع والرفع منه بالا رفتن از رکو و الاعتدال قائمان در این بالا رفتن اعتدال داشتن کاملا صافی سادن و سجود نه پس اعتدال شد هشت نه سجده و طمعنینتو فی ده طمعنینتو در آن آرامش داشتن در سجده رفع من یازده بالعرفتن السجد دوازه الجلسة بين السجدتين نشستن بين دو سجد سيزده والطمأنينة فيها آرامش در این جلسة يعني انك فورا نشس بره آرامش داشت بشي چارده والتشهد الأخير تشهد الأخير پانزه والجلوس فيه نشه اون نشه سنه برای تشهود یعنی نشه سنه جدا حساب کردن تشهود و جدا و على النبی شانزده درود بر پیغمبر هفده تسلیمتون واحدتون یک سلام سلام اولی یک سلام درش خلاصه فرض و هجده و نیتو فيها الخروج بها من الصلاة نیت در اون سلام همون نیت خارج شدن از نماز اینا شدن 18 تا فرض وسننها قبل الاحرام بها شيان سنن های نماز قبل از احرام دو چیز هستن اذان و اقامه اذان و اقامه و بعد الاحرام بها شيان بعد از احرام بعد از الله اکبر گفتن بعد از سروع نماز هم دو تا سنت داره التشهد الاول یک تشهد اول و القنوط في الصبح دو قنوط در صبح و ما سوى ذلك من ها بقیه چیزهایی که در صفت نماز رد شدند جزو هیات نماز هستند خب پس ما فرضا رو خوندیم سنن و اینجا خوندیم که همون سنن ابعاز منظوره که باقیه مسائل نماز هستد این سه چیز رو داشته باشیم که جلوتر یک مسئله خیلی مهمی رو توضیح ده میگه فا اینه قطسره فیها ها الالفروزی وحده اجزاته سلاته و این ضیع حظ نفسیه فی ما اگر اکتفا کرد در نماز فقط بر فرزه ها نجده فرزی که گفت نماز کافیه نمازش درسته اگرچه که اون بهره نفسش رو در اون چه که ترک کرده از دست داده در سنت ها از دست داده اگرچه که رو از دست داده اگرچه که سواب انجام سنت ها و رو از دست داده ولی نمازش انجام گرفته و یجبرو بسجود صحف ما اخل بیه فیها فيه من المسنونات دون الهیات خوب دقیقت داشته باشید میگه و جبران میشه با سجده صحف خللی که وارد کرده است در سنت ها در سنان مثلا تشهدو اولی رو نخوند با سجده صحف جبران میشه دون الهیات نه هیات چون برای هیات نیازی به سجده سفر اصلا نیست هیات ترکشون برای ترک سه هیئات سجده صحب نمی نمیکنه شخص پس او یه به سجود سفر ما خلا بیه فیها من المسنونات دون الهیاتی جبران می شود با سجده سفر خلالی که وارد کرده از در ناز در مسنونات نماز دون الهيئات ندر هيئات الناس يعني هيئات براشو سجده سهبي انجام نمي كره فإن أخل بفرز من فروزها لم توجزي السلاة حتى يأتي بما سهى عنه وما بعده مرتبا اگر خلال وارد کرد در فرزي خب اگر خلال وارد کرد در سنة كن يازي بسجده سهب هست اگر خلال وارد کرد در هيئات كن يازي بچيزي نيست اگر خلال وارد کرد در فرض میگه لم تو جزه السلات. نمازش درست نیست حتی یعطیه به ما سهان تا اینکه اون فرضی رو که از روی صحب و فراموشی ترکش کرده انجامش بده و ما بعده مرتبا و ما بعد اونو مرتبا این با ترتیب مثلا شخص فرزن رکو رو ترک کرده حالان اومده در سجده دومه میگه باید بیاد رکورو انجام بده و با ترتیب بقیه مسائل بعد از رکورو انجام بده یعنی بره بی ایس بالا بعدا بیاد سجده اولو انجام بده بعدا بیاد سجده دومه با ترتیب و یس جدو سجدتی السحف بس اگر فرضی رو ترک کرد فرض با سجده صحب جبران نمیشه بلکه بر میگرده اون فرض رو انجام میده و با ترتیب آنچرا که بعد از فرض هست رو انجام میده و یست جدو سجده, سجده صحب قبل السلام و سجده می انجام میده قبل السلام خب چون در مذهب شافعی سجده صف قبل السلامه ولی در مذهب احناف هم بعد از سلامه یعنی شوافه میگن اون حدیث منسوخه و احناف میگن این یکی منسوخه مالکی و حنابله رو هر عمل انجام میدند جمع کردن در واقع بین هدیث دو حدیث و قول صحیح هم میبینه که هر دو حدیث رو میشه عمل کرد باله یعنی قبل سلامو و بعد از سلا بعد الزمان زمان و اگر زمان طولانی شد نماز رو از سر نو شروع میکنه فرضی رو ترک کرده و زمان طولانی شده مثلا در رکت دومی یا اولی فرزی رو ترک کرده و دیگه الان زمانش هم طولانی شده میگه استعنفه ها دیگه نمیاد که اون فرزه رو انجام بده و ما بعدش رو میگه بلکه اونو از سر نو نماز رو شروع بکنه فان این نسی رکعتن فذکره بعد سلامی بنا ما لم يتطاول الزمان أجر ركأتي رو فرموش كرت. أجر ركأتي رو فرموش كرت. فذكرها بعد السلام وبعد السلام يادشومات. من مثلا يركتو نخوندا. ميادو ركتو نخوندا. مثلا به جاه چار رکت زر دو رکت خونده بوده، دو رکت فراموش کرده بود فکر می کر چار رکت خوند سلام که داد یادش اومد نه دو رکت خونده میگه بنا نماز رو ادامه میده. ده اگر یکی رو فراموش کرده بود یک رکت دیگه اضافه میکنه. بعد از سلام، اگر مثلا دو تارو فراموش کرده بود دو تای دیگه رو اضافه می کنه ولی معالمی تقوله زمان تا زمانی که زمان طولانی نشده باشه فرض کنیم در نماز زهر سه رکت خونده و سلام داده سلام که داد سی ثانیه بعد یادش اومد که او یه رکت مونده اینجا دیگه نمیاد از سر نو چار رکت بخونه بلکه همون یک رکت رو میخونه و در آخرش سجده یه انجام میدهه ولی اگر زمان طولانی شده بود دو ساعت یادش اومد مثلا به عنوان مثال اینجا دیگه بنا نمی کنه نماز رو ادامه نمیده بلکه از سرنو میاد کامل می و زیاده فی السلاتی که فی بطلانها ها اضافه کردن در نماز مانند کم کردن در نمازه در باطل شدن نماز فرقی نداره همانطور که اگر یکی اومد از نماز یه چیزی رو کم کرد سجده ای رو عمدی کم کرد نمازش باطل میشه اگر یه چیزی رو اضافی هم کرد عمدی نمازش باطل میشه پس اضافه کردن در نماز مانند نقصان کردن در نماز در باطل شدن نماز به شکل عمد و اجزاعتو که صحف معجبرانی ها بسجود صحف و کافی میشه در صحف یعنی اگر از روی صحف چیز رو اضافه کرد مشکلی نیست معجبرانی ها بسجود صحف ولی بیاد با سجده, سجده صحف اونو جبران کنه مثلاً حرکت خونده بود برای شد برای حرکت پنجا بعدن کنشست یادش اومد که او اضافه انجام داده اینجا باز سجده صحب بکنه ولی اگر عمدی این کار رو کرد نمازش باطل میشه پس نماز اگر در نماز فرضی رو ترک کرد باید برگرده اون رو انجام بده اگر زمان طولانی نشده بود اگر سنتی رو ترک کرد منظور سنت عبازه ست که گفت یا قنوط در صبح سجده با سجده صحب جوران میشه اگر هیئتی رو ترک کرده بود هیچ نیازی به سجده صحب هم نیست نمازش درسته